یامش افسانه‌ای از آشور کهن ارائه شده توسط کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ملیحه بیزایی روزگاری در شهر اروک پادشاهی با فرر شکوه بسیار فرمان میران این داستان از همان روزگار به یادگار مانده است از روزگارانی کوهن آن زمان که خدایان و آدمیان یگانه بودند، آن زمان که چندین راه آسمانها را به زمین میپیوست و زمین را به آسمانها نام این فرمان روای شکوه مند گیلگمش بود گیلگمش هم خدا بود هم انسان و از این هر دو بهره ها داشت. دو بهره از تنش خدایانه و جاودانه بود و یک بهره آدمیوار و مرگیا رنج و شگنج این دوگانگی تازنده بود با او بود. کوشی تا واقت رو قهری خدایانه جاودانه شود. لیچم بهره انسانیش آهنگ مرگ داشت و این گرایی خدایانه را بی فرجان گذاشت. سرانجام گیلگمش سر بر آستان مرگ سود و از جهان آسود. گیلگمش در آغاز بر شهر اروک فرمان میران، پادشاهی بود خشماور و ستمگر، همه مردان جوان شهر را به بردگی و بندگی خاص آسان خیشوا داشت و دخترکان را به خدمت گزاری در شبستان کاخ شاهی گماشت و چنین بود که در قلم و فرمان روایی گیلگمش مردمان همه در رنج بودند و دمی می آسودن. و سرانجام از آن همه خودکامگی و ستمگری به جان آمدند، و شکایت به خدایان بردند، آنو فرمان روای بزرگ آسمان ها زاری های را شنید و بر آنان رحمت آورد، آنو آن الهی بزرگ به آرورو که سالها پیش آدمی را از گل آفریده بود چنین فرمان داد، تو که آدم را آفریدی و با دستهای خیش به او زندگی بخشیدی اکنین آفریده دیگر پدید آورد، تا با زورمندی و چیرگی گیلگمش پادشاه اروک برابری و همسری کند، زیرا کسی را تاب خودکامگی و ستمگری گیلگمش نیست. آرورو گوش به فرمان چون کوزگران که آب در کف دست ریخت و خاک را نمناک کرد و آنگاه در زیر انگشتانش آفریده پدیدا شد بالید و برامد. عظیم هم چون گیلگمش. آرورو این آفریده را به حیبت و حیعت آنو ساخت و او را انکید و نامید. در او روح جنگ دمید چنانکه که سراپام از هر ستیز خویی بود و با باطنی پوشیده از مو، موی زبر چندن که تمیز آن از پوست پشمین جانوری که پوشاک وی بود بسی مشکل می نمود آرورو اینکدو را به زمین فرستاد تا جانور آسا زندگی بگذراند دو چون خوکان وحشی در بستر نیزارها می قلتید و همچون آهوان دشتی بر پهنه سبززارها می چمید. و شادی ها میکرد شبها ها گاو میشوار بر روی شکم دراز میکشید تا آب بنوشد و اینکه دو بدین گونه روزگان می گذران. خوش می داشت آفتاب را که روشنی بخش او بود و نسیم را که پس دویدن و خسته شدن به او طری و تازگی میبخشید و علف ها و برگ ها را که خوراک روزانه بود و شاد بود که هیچکس از بودن او خبر نداشت شبی یک شکارچی نزدیک چشمهی در کمین غزال نشسته بود که ناگهان به جای غزال موجودی پدیدار شد آدمیوار اما جانور رفتار شکارچی ترسید و پا به فرار گذاشت چون به خانه رسید از نفس افتاده بود لیکن یارای آن نداشت تا با کسی از آن آفریده شگفت سخن بگوید که در کنار چشمه دیده بود روز دیگر شکارچی باز در همان زمان و همان مکان در کمین نشسته بود که مانند روز پیش انکیده را دید که آب می نوشد. انگاه دریافت که آنچه دیده زاده خیا نیست واقعی است و نیز دریافت که چرا در این چند روزه هر تله‌ای که کار می‌گذاشته با امداد روز بعد درش را باز می‌دیده و هر چاله‌ای که برای به دام افکندن جانوران می‌چنده و با شاخه و برگ رویش را به دقت می‌پوشاند، انگار خود به خود پر می‌شد. این انکیدو بود که ها را میکشود و جانوران را از دام و رهایی می‌داد. و چاله ها را هموار و بی خطر می کرد تا شکار کردن ناممکن شود. این دو این کارها را از سر نیکدلی و مهربانی می کرد زیرا که بر جانوران دل می سوزان و می دانست که ها نیز چون خود او از آزاد گشتن سرخوشند. این دو نمی توانست به بند افتادن و کشته شدن جاندارانی را بپذیرد که شریک زندگی آزاد و بی قید و بند او بودند. اما این خوشایند شکارچی نبود. زیرا که با شکار گذران زندگی می کرد و دیگر بیش از این نمی توانست دست خالی به خانه بازگردد. گاهی قولها خطر آدمها این آفریده های ناتوان زیرک را از ساد دلی ناچیز می انگارند. اینکی بارها شکارچی را کمین کرده در پشت بوتوها دیده بود و هر شبانگاه کارهایش را تماشا کرده بود ولی از او کمترین حراسی نداشت از این موجود کوچک ترسو که خمیده در بیشه ها راه میرفت چه باک؟ انکیدو از آدمها باکی نداشت چون آدم ها رو نمی شناخت. شکارشی پس از چند روز اندیشیدن نزد پدر خود رفت که مردی بود فرزانه و من. تا با او مشفرتی کند. گفت پدر آفریده ای عجیب دیدم که در این دشت بیشه می گردد. هم شکل آدمی زاد است ولی بزرگتر و زوربندتر از دلاورترین جنگاوران. چون آدمیان جامه نمی پوشد و هر که او را ببیند، جمان میبرد جانوری است بیابانی، زیرا تنی پشمالود دارد، اما مانند ما راه می رود. چشمان او درخشان است، و روز و شب در بیشه میگردد و در میان گله ها می رود و گله از او نمی رمد و نمی گریزد، نه از شیر میهرسد نه از پلنگ اینها را میشد نادیده انگاشت اگر طله های مرا از کار نمیداخت و چاله‌های های مرا پر نمیکرد. من بارها دست خالی به خانه برگشتم مدت تاست که هر تا دیگر این امید را ندارم که بتوانم جانوران را از کمینگاه هم غافل گیر کنم زیرا این اوست که همیشه پیش از پیدا شدن جانوران مرا پیدا می کند تا آنها را از خطر آگاه سازد. بیگمان او در پی آزار من نیست اما تا روزی که بر فرمان رواست برای امیدی به شکار نیست پدر که دید کارها چندان دشوار شده است که فرزندش به تنهایی نمیتواند از پس دشمن براید او را راهنمایی کرد که به شهر اروک برود و از گیرگمش یاری بخواهد پس شکارچی آهنگ شهر اروک کرد و این درست همان چیزی بود که آنو سرور آسمانها میخواست به هنگامی که فرمان داد تا آرورو امکیده را بیافریند رواست که گاهی گیلگمش خود رای با آفریده ایرو روبرو شود همزور و هم آورد آنو با خود گفت جای هیچ تردیدی نیست که این دو قول با هم کنار نمی آیند کارشان به کشمکش می انجامد و در این میان مردم اروک نفسی به خواهند کشید گیلگمش همین که آگاه شد در قلم رای فرمان فرمانروایی او حیولای آزادانه زندگی میکنند هیله‌ی اندیشید به شکارچی گفت به کنار همان چشمه که آبش خور قول است برو زنی جوان از زیباترین خدمتگذاران کاخ مرا همراه ببر و بگذار زرانه جوان باقو سخن بگوید تو باید پنهان شوی و آن دو را تنها بگذاری تا ببینی چه پیش میآید. شکارچی به فرمان گیلگمش همراه با یکی از کنیزان زیباروی او به سرزمین خود بازگشت شامگاه روز بعد هر دو در نزدیکی چشمه پنهان شدند چشم به راه ماندم هنگامی که اینکیدو از راه رسید شکارچی دم درکشید و به پشت شاخه ها خزید اما کنیزک ترسی نشان نداد و با بیپروایی از پشت بوته ها بیرون آمد و به انکیدو که از دیدنش شگفت زده شده بود نزدیک شد قول و زن جوان محوه تماشای یک دیگر بودن انکیدو هرگز با چنین آفریده ایرو برو نشده بود تنها آدمی که تا آن زمان دیده بود، مرد شکارچی بود که چندان هم از او دل خوشی نداشت. اما این بار احساس کرد که به جهانی ناشناخته راه یافته است. زن جوان به آرامی می و چشمانش به آرامی چشمان غزال می درخشید. این کیدو که به اندام های ورزیده و چابک خیش می نازید، ناگه پی که در جهان آفریده هستند که از پرنده پروازگر، زیباتر و از پلنگ کمین کرده نرم رفتارتر و از پرته روشنایی به هنگام وزش نسیم بامدادی دلانگیزتر انکیدو به خود آمد و از نگاهی که دختر جوان به سراپای او میافکند شرمگین شد گیسوان دختر نن مصاف صاف و شانه خورده بود و انکیدو موهایی ژولیده داشت جامٔ دختر پیراهنی سپید و درخشان بود و روی پیراهن بالا پوشی بر داشت از آن هم سپیدتر و پاکتر. برگردنش توقی زرین می درخشید. گوشواره خوشنقش بر گوش آویخته بود. اما نیمه تن انکیدو را پوستی پشمین و زشت می که از گردنش آویخته بود. انکیدو که بر جولدگی موی و زشتی تن پوش خیش آگاه شده بود سخت شرم گشت. اما در همان لحظه همچنان که زن جوان در کنارش ایستاده بود اینکیدو که تا آن زمان به زبان آدمیان سخن نگفته بود و تنها زبان جانوران را در میافت بازن جوان به زبان مردم شهر اروک سخن گفت. و چون دختر به او پاسخ داد آهنگ کلامش به گوش اینکیدو از هر آوایی در جهان زیباتر آمد. دختر به او گفت اینکیدو تو بی زیبایی خدایانی زورمند یا چابک آفلیننده تو باید از خدایان باشد. با من بیا و دیگر در این بیابان زندگی مکن. تو شایسته تر از آنی که همدم شیر و روباه باشی تو را برای همدمی با مردمان آفریدن به شهر اروک بیا سرور من گیلگمش تو را به آستان خیش پذیرا خواهد شد و به غلامان و کنیزان و همه وزیرانش آمدنت را گرامی خواهد داشت و برای جشنهای باشکوه شکوه برپا خواهد کرد اینکی دو با من بیا گیلگمش بزرگ مرا به سفیری نزد تو فرست داده است دوستی او و دوستی مرا بپذیر انکیدو میخواست در پی دختر برود تنها از آن روی که دل به آن زیباروی بسته بود و نه دیدار گیلدمش چندان دلخواه او نبود اما به راستی انکیدو میخواست از زندگی آزاد خود دست بشوید و شادی آزاد گشتن و ارباب نداشتن و آسودگی از نگرانی ها را از دست بدهد انکیدو همچنان که با دختر گفتگو کرد، اندکی از چشمه دور شد چون به غزالهایی که بیش از آن در کنارش آب می نظر نظرف دید غزالها به نگرانی ایستادند و لب به آب نمیزنند و هنگامی که نگرانی آنها را دریافت با مهربانی به سویشان رفت لیکن برای نخستین بار دید که غزالان ترسان از او گریختند. این که دو چون به زبان آدمیان سخنگو پیوندش با یاران دیرین بریده شد. او تنها مانده بود و از آن پس دیگر چاره ای نداشت جانوران که رهایش کردهاند خواه ناخواه میباید با هم نوعانش آدمیان زندگی کند پس انکیدو شکارچی و دختر جوان هر سه راه شهر اروک را در پیش گرفتند انکیدو شکارچی و دختر جوان به سوی اروک پیش می‌رفتند، ولی شکارچی دیگر شوقی به دیدار گیلیمش نداشت زیرا می‌دانست که دیدار شکارچیان ساده با شاهان سودی ندارد بهانه ای آورد و به روستای خیش بازگشت. اول از آن بیشه رفته بود و شکارچی جز این نمی‌خواست. دیگر هیچ کس شکارهای او را رم نمیداد و چاله هایش را پر نمی کرد. شاه و قول هر دو از تبار خدایان بودند و سرانجام با هم کنار می آمدند. شکارچی نگران دختر نیز نبود. به راستی اگر انکیدو می به او آسیبی برساند از دست شکارچی چه بر می آمد؟ نه دختر جوان و نه انکیدو هیچ کدام کمترین توجهی به او نداشتند. هر دو گامزنان پیش میرفتند و انکیدو با شادی و شوری بیمانند با هم سفر خود سخن می گفت. از سوی دیگر، گیلگمش در شهر اروک خوابیدید. دید که با نیروی تمام در میان جنگجویان خود ایستاده است و ناگهان چیزی مرموز از آسمان فرود میآید. چه سنگی بز عظیم و سنگین و گیلگمش تلاش میکند تا سنگ را از زمین بردارد اما نمیتواند با همه زورمندی توان آن ندارد که سنگ را جابجا جا کند آنگاه همه مردم ارو گرد میآیند از کارگران و باربران و پیشوران گرفته تا سربازان و باغبانان و توانگران همه دور سنگ آسمانی گرد میآیند و آن را بدان گونه ستایش میکنند که شاه خود را میستودند گیلگمش خشمگین به سنگ می‌تازد و شگفت آنکه سنگ سبک می‌شود. چنانکه پادشاه به هیچ دشواری آن را در میان بازوانش میگیرد و در پیش پای مادر خود ملکه نینسون می‌افکند. همان شب گیلگمش خوابی دیگر دید این بار دید که از آسمان تیشه سنگی فرود می آید تیشه زیبا و درخشان شایسته خدایان همچون تندری که آنو بر سر مردم فرود آورد و دید که مردم اروش بار دیگر دور تیشه آسمانی گرد آمدند تا آن را به ستایند تیشه را بر برمی‌دارد و به مادرش پیشکش می‌کند ملکه مادر آن را می‌پذیرد و به پسرش می‌گوید چیزی نمیگذرد که این تیشه گرامی ترین یار تو خواهد شد بامداد گیلگمش خستهتر و نگرانتر از پیش سر از بستر برداشت همه میدانند که خوابها را خدایان میفرستند و هیچ خوابی را نباید شوخی انگاشت به خصوص خوابی که شاه ببیند و در آن خواب مردم سرزمینش نخست سنگی آسمانی را ستایش کنند و آنگاه تیشهای سنگی را گیلگمش هرچی بیشتر به خواب‌های خیش می‌اندیشید، نگرانیش افسون‌تر می‌شد تا آنجا که دیگر از بی‌تابی بسیار به مادر خود پناه برد. آنگاه که گیلگمش خواب‌هایش را باز می‌گفت، مادرش لبخندی بر لب داشت، زیرا به فرزانگی و خرد معنای خواب‌های او را دریافت. گفت: فرزندم، خدایان در برابر تو حریف و همآوردی آفریدند. جنجویی چون تو بزرگ و دلاور و نیرومن و او را از آسمان ها به زمین فرستادند و اینک او در راه اروک است. مردم شهر او را بزرگ می و ستایش ها کنند ولی او دور از دشمنی و کین توزی با تو دوستی می کند و همدم یگانت می شود و تو را در فنمانروایی روایی یاری ملکه نینسومن زنی بود سال خورده و خردمند و در تعبیر و گزارش خواب استاد و همه گفته هایش درست همان گونه که بینی کرده بود به واقعیت پیوست همان شبی که گیلگمش آن خوابهای شگفت را دید انکیدو و همراهانش از سفر باز ایستاده بودند تا از خستگی راه بیاسایند و دختر جوان برای انکیدو از شهر اروک و سرورش گیلگمش سخنها میگفت و از شگفتیهای کاخ شاهی از نخلستانها و چشمها و آبنماها از پرندگان و سنگفرشهای وسیع بیرونی کاخ هم چنین از دیوارهای آجری که با رنگهای درخشان نقاشی شده و با با باشکوه آرایش یافته بودند و برج‌هایی که سر بر آسمان می‌سودند انکیدو حتی گمان نمیکرد که در جهان چنین فر شکوهی وجود داشته باشد و از همان زمان از ستایش آن همه زیبایی و شکوه سرشار شد شامگاه دیگر به دوستایی رسیدند و در آنجا برای نخستین بار انکیدو مزه خوراک آدمیان را چشید. از نانی که شبانان بر سنگهای داغ پخته بودند، خورد و از شرابشان نوشید. انکیدو که تا آن زمان جز شیر بز کوهی و آب ننوشیده بود، آن شب شراب فراوان نوشید و پس از تویی کردن شش پیمانه بزرگ، ذهنش از همیشه سبکتر شد و آزادتر. پس بران شد تا کاملا شبیه آدمیان شود، از آرایشگری خاص تا موهایش را کوتاه کند و ریشش را بتراشد. آنگاه ان دو را به گرما ببردن پس از شستشو بر اندامهایش روغن های اتراگین ماریدن و دختر جوان بزرگترین بالاپوش خود را بر او پوشاند و این جامعه هر چند تنگ بود اما برازنده او مینمود انکیدو پاک آراسته خواست تا زور و بازوی خیش را نیز به شبانان نشان دهد پس نیزهای در دست گرفت و خنجری بر کمر زد و چون شبانان به خواب رفتند به پاسداری ایستا تا آنران را از گزند جانوران درنده در امان بدارد انکیدو که تا چندی پیش با جانوران میزیست و یار و نگهدارشان بود اکنون با آنها دشمنی میکرد هنگام که شیری به بوی رمه به روستا نزدیک شد بی هیچ درنگی تن شیر را با زشت درید و زمانی بعد به ضربه خنجر پلنگی را که به سوی او جهیده بود از پای درآورد. انکیدو با امداد روز دیگر لاشه جانوران درنده را به شوانان نشان داد و آنان دریافتند که او مردی مردیست چابک و نیرومند و آفریده یگانه در شایسته پادشاهی و رهبری آنهاست. پس همه به زبان آمدند و رنجها و دشواریهای خود را با انکیدو در میان گذاشتند. در میان آن گروه مردی بود. از مردم شهر اروک که کارش تنها آب کشیدن از چاه بود. او تمام روز بر دسته چرخ چاه خم میشد، و چون اسبی آهسته دایروار قدم بر می داشت و با این تلاش جانگاه چرخ سنگین چاه را به گردش در می آورد. وریسمان دل کشیده می شد. آب از چاه بالا می آمد و در نرها می و او بدین حال زیر آفتاب سوزان دست و پا می زد. این دو چون ناله های آن مرد را شنید پرسید که چرا هرگز از این کار جانکاه دست نمیکشد و به رنج خود پایان نمی دهد مرد در پاسخ گفت که یکی از بزرگان گیلگمش است و شاه او را به این روستا گسیل داشته تا به کشتزارها آب برساند به فرمان گیلگمش اگر خرمانهای این روستا بهترین محصول در سراسر قلم را شاهی نباشد، مرگ او مسلم خواهد بود و از این روی ناگزیر است، یا بی کمترندرنگی کار کند، یا تن به مرگ بسپارد. اینکی دو از ستمگری گیلگمش در شکفت ماند و گفت، اکنون که بر نیروی خیش آگاهی یافتم و خود را از آدمیان می دانم، با ستمگری تحمل ناپذیر گیلگمش پایان می بخشم، آنگاه همچنان که روزایان برای پیروزیش نیایش می به سوی شهر اروک به راه افتاد. هنگامی که انکیدو به نزدیکی اروک رسید این خبر در همه جا پراکنده شده بود که قولی شکست ناپذیر مردی روی روی آسا از جانب خدایان فرستاده شده است تا دیدگان گیلگمش را به حقیقت بگشاید. همه مردم چشم به راه او بودند. کار و زندگی را رها کرده و به استقبالش آمده بودند هنگامی که انکیدو به میدان بزرگ شهر رسید گروهی انبوه در پی او روان بودند مردم شهر با یک یکدیگر زمزمه میکردند چقدر به گیلگمش شبیه است نه به بلندی گیلگمش نیست ولی نیرویش با او برابر است شاید هم نیرومندتر از او باشد دست کم باید چابکتر باشد به راستی شیر غذال ننوشیده است در این میان دختر جوان که نمی توانست آرام بماند هر چه از انکیدو دیده بود و می دانست باز گفت. همه از این قهرمان تازه امید معجزه داشتند. گیلگمش نیز از ورود انکیدو آگاه شده بود و به زودی دانست که آن موجود آسمانی همان که نین پیش پیشبینی کرده بود از راه رسیده است. و اینک پا به شهر نهاده. گیلگمش در میان کاهنان و از پس نوازندگان که شیپورها و تبلها را به صدا درآورده بودند به استقبال انکیدو شتافت در برابر دروازه معبد آنو دو گروه به هم رسیدند و گیلگمش و انکیدو یکدیگر را دیدند مردم از ترس شاه از انکیدو کناره گرفتند و میدان را برای آن دو خالی کردند گیلگمش با اشاره دست کاهنان نگهبانان و نوازندگان خود را فرمان داد تا کنار روند و او را با آن مرد بیگانه تنها بگذارند. همه جا سکور بود. زمانی که گیلگمش و اینکی دو در برابر هم نیست صدای تبلها و شیپورها خاموش شد. آن دو بدون آنکه سخنی بر زمان آورند چون دو گاوه وحشی به سویم حمله بر شدند و با خشونتی ستمگرانه بر سر و روی یک دیگر های سخت وارد آوردند. در آن لحظه های خشم که با هم گلاویز شده بودند و گرم ستیز چنان به در و دیوار معبد می‌خوردند که معبد به لرزه در می‌آمد جنگ زمانی دراز در گیر بود و سرانجام گیلگمش به زانو در آمد. آنگاه خشمش فرو نشست و ترس بر او چیره شد انکی دو که گفتی پیروزی چشمگیر خود را از یاد برده بود پادشاه را یاری کرد تا از زمین برخیزد و گفت گمان می‌کردم که تو گیلگمش پادشاهی ستمگری اکنون می‌بینم فرمانروایی دلیری تو از تمام مردان سرزمین آشور نیرومندتری و بیگمان شایسته فرمانروایی بر این مردمی نه من هرگز نمیخواهم تو را از ذات گاهت برانم در کاخ خیش بمان و بر شهر اروک فرمان بران و اگر خواست تو باشد مرا به دوستی بپذید گیلگمش دریافت که خوابش به حقیقت پیوسته و ملکه نینسون اشتباه نکرده است پس دست انکیدو را که به سویش دراز شده بود در دست گرفت و هر دو سپار کاخ شاهی شدند و در کنار هم به تماشای جشنی نشستند که به افتخار دوستی و صلح آن دو برپا شده بود روزهای بسیار گیلگمش و انکیدو سخت سرگرم بودند جشن سال نو بود و گلگمش به آین شاهان میبایستی در جشنها و آینهای بسیاری شرکت میجوز و قربانی های فراوانی به آسانا خدایان پیشکش میکرد تا سالی پربرکت در پیش باشد و زمین محصول فراوان بدهد و جانوران نیرومند و سالم شوند. همه مردم سرزمینش میدانستند که هرگاه این آینها از یاد برود بلاهای آسمانی گرسنگی و خشکسالی سالی در پی می آید. تائون و وبا شیوع مییابد و مردم و جانوران کشته میشوند گیلگمش به هیچ روی نمیخواست نفرین خدایان بر سرزمین او فرو داید در همه آیینهای قربانی با وقار بسیار شرکت میجست و همه دستورهای کاهنان خود را پذیرفت و اینکه دو در تمامی آیینهای نیایش قربانی در کنارش بود مردم شهر و دیگر در این اندیشه نبودند که این که دو فرستاده خدایان است و برای برابری با پادشاه آنها آمده است. براستی هم آشکار نبود که وی از گیلگمش فرمان روایی بهتر باشد. کارگران، پیشوران، ماهیگیران، باغبانان و کشاورزان حتی بیشتر از پیش از گیلگمش می و او را بزرگ می داشتن. هنگامی که روزهای شادی و جشن به سر رسید انکیدو دیگر از مهتران و بزرگان شهر شده بود آداب بزرگی و سروری آموخته بود و نیک میدانست که چگونه در آینها رفتار کند نوای چنگ و نی را دوست می داشت. چیزهای زیبا و گرانبها را پسند می کرد و بیش از همه از خوردن گوشت خوب و نوشیدن شراب مردافکن لذت می‌برد. چیزی نبود که گیلیمش برای خوشایند انکیدو در اختیارش نگذاشته باشد دیگر آن روزها که انکیدو از آب چشمه می و علف بیابان می خورد، گذشته بود. اما با همه این نعمت ها حوصله اینکیدو به سر آمده بود. و از روزگاری که به شادی در دشتها میدوید و آزادانه در پرتو آفتاب باندادی گردش می یادهایی مبهم در خاطر داشت. در درگاه گیلگمش همیشه همه چیز یکسان بود ولی در جنگل حتی دو درخت همانند وجود نداشت. گی برملال خاطر مهمانش آگاهی یافت و بر آن شد تا با او در راه سفری بر حادثه پای نهد. پس به انکیدو چنین گفت جنگلیست از درختان سر در کوهستانی که برای رسیدن به آن روزهای بسیار باید راه سپرد. باید از سیلابهای حراسنگیز گذشت. فرسنگها راه باید پیمود و با پیشامتهای بسیار درگیر شد. با همه اینها، من می خواهم به آن جنگل بروم و سرها را ببرم. اینکه دو پرسید چرا به چنین فکری افتاده ای؟ زمانی که من آزادانه در این سرزمین میگشتم، بارها در کنار گله های جانوران وحشی گذارم به آن بیشه ها افتاد. در آن جنگل راه سپردم تا به قلب جنگل انبوه درختان سرو راه بردم و تمام سختیهایی را که مردم فانی برای راه یافتن به جنگل باید برخیش هم بار کنند شناختم. هون بابا قوله بزرگ در آن زندگی میکند. حتی من با آنکه در آن که دران زمان بر چیزی آگاه نبودم، با همه زورمندی از دیدنش حراست داشتم. نعرش که از راههای دور به گوش میرسد، همچون غرش طوفانی است و نفسش چون گردبادی است سهمگین. و از دهانش آتش بیرون میجهد. اگر به راستی برانی که درختهای سرو جنگل خدایان را ببری، باید به با چنان قولی به ستیز برخیزی گیلگمش گفت از سخنان تو چنین برمیآید که همراه من نخواهی آمد و حال آن که با نیرویی که من در تو سراغ دارم بیگمان می توانی با این هیولا پنجه درفگنی زنهار ای گیلگمش زنهار هم را خدایان برای نگهبانی سرب ها گماردند و خدای فرزانه انلیل او را آفریده است هونبابا از تمام مردم فانی نیرومندتر است. گیلگمش با این سخنان از تصمیم خیش دست بر نداشت و گفت راستی سرنوشت همگان این نیست که زود سر بر آستان مرگ نهند تو اینک بیمناک از مرگی اما سرانجام روز مرگت فرا خواهد رسید. نیک بیاندیش چون روزی مردم از تو بپرسم این کی دو هنگامی که دوست تو با مرد روبرو شد تو چه کردی؟ به ایشان چه پاسخی میدهی اما اگر من در چنان حادثهای با دلیری بسیار کشته شوم همه خواهند گفت گیلگمش در جنگ با هومبابای تراساور از پای درآمد تنها او دل آن را داشت که چنان دشمنی را به نمرد بخواند و یاد من پس از آنکه تنم با خاکیکسان شود برای همیشه زنده خواهد ماند اینکیدو از آنجا که نمی‌خواست در دلیری کم از شاه باشد، سرانجام پذیرفت که با او به جنگ هونبابا برود. هرچند کمترین امیدی به پیروزی نداشت. اینکیدو در کارها چندان پایینه میفشورد و این گیلگمش بود که همیشه حرفش را به کرسی مینشاند. پس ساز سفر کردند. گیلگمش از تمام آهنگران خواست تا در جلوی کاخ گردایند و فرمان داد تا جنگ افزارها بسازند. آهنگران برای هر یک از آن دو سه تبر سنگین، دو زوبین و دو خنجر ساختند. هنگامی که گیلگمش و اینکی دو جامعه رزم پوشیدند، گیلگمش پیران قوم را کرای او بودند گرد آورد و قصد خود را بر آنان آشکار کرد. پیران را ترس در گرفت. کوشیدند تا مانند اینکی دو شاه را از آن کار باز دارند. از هراسناکی هنبابا داستان ها زدند و گیلگمش را حشدار دادند که تا آن زمان هیچ کس را یارای آن نبوده است به جنگل درختان سرف آنجا که پجواک قرش هونبابا به گوش میرسد پای بگذارد راستی گیلگمش بر سر آن بود تا با همبابا به نبرد برخیزد اگر مردم او شاه خود را از دست بدهند بر سرشان چه خواهد آمد؟ گفتگوها و پرسشهای پیران قوم چندان به درازا کشید که گیلگمش خسته شد در پایان بار دیگر یادآور شد که سر آن ندارد تا از راه رفته بازگردد و آنگاه به نزد مادر خیش رفت. نینسوون چون بر قصد فرزند خیش یافت سخت نامید گشت لکن نکوشید تا او را از کاری که در پیش دارد باز دارد زیرا میدانست که پسرش سخت خیره سر است. تنها کاری که از دستش برمی زاری به درگاه خدایان بود تا فرزندش را از گزندها به دور نگه دارند. از پله های برج کاخ بالا رفت و در آنجا خطاب به خدای آفتاب فریاد زد ای آنو چرا خدایان فرزندی چون گیلگمش بر من ارزانی داشتند او بیتاب و برانگیخته است و همیشه در اندیشه خطر کردن اینک بنگر این بار چه در سر دارد آن است تا به جنگل درختان و راه برد و هومبابا را از پای درآورد نمیداند که این کار شدنی نیست اگر میدانست که سر سرانجام چه سرنوشتی در کمینه اوست آرام می شد و در شهر اوروک می ماند و بر مردم این سرزمین فرمان می راد و از نعمتهای زندگی بهرهور می شد لیکن تو می دانی که گیلگمش از استر لبنانی خیر سرتر است و هیچ کس را توان بازداشتن او نیست من به درگاه تو ای خدای آفتاب زاری می کنم تا نگهبان او باشی و در این راه پر آشوب از هر گزندی به دورش نگهداری ای خدای نیرومن فرزند مرا یاری و اختابی گزند به خانه باز گردد همچنان که نیایش میکرد میگریست و زاری او چنان دلجانسوز و اندوفزا بود که خدای آفتاب بر او رحمت آورد و بر آن شد تا گیلگمش را از خطر به دور نگه دارد پس نینسوون از فراز برج به زیر آمد و فرزند را به درود گفت و به امکی دو تلس می تا او را در تمامی سفر نگهبان باشد. زمانی که دو قهرمان شهر اروک را برای نبرد با هون ترک می همه مردم شهر دیدند که امکی دو تلسم نینسوون را به همراه دارد و همه شاد بودند چرا که می اندیشیدند دو پادشاه دارند. و یکی دیگری را نگهدار خواهد بود. به اندیشه هیچکس کس نگذشت که داشتن دو پادشاه چه زیانبار است. چنین اندیشههایی در چنان ها هنگامهی دور از ذهن همگان بود. در لحظه های خطر مردم از خودگذشتگی بیشتری نشان میدهند. تمام مردم شهر بازگشت پیروزمندانه گیلگمش و اینکیده را به دلوجان آرزومند بودند. این کیدو و گیلگمش در کنار هم ره جنگل سرف شدند. برای مردم عادی گذشتن از راه جنگل سرف شش روان روز به طول می انجامید. ولی آن دو سه روز راه را پیمودند. در گذار از دشتها و دره خسته نمی شدند. با گامهای بلند بیان نیازی به شنا داشته باشند از روخت های پهناور می بامداد روز چهارم به آستانه جنگل رسیدند. جنگل درختان سر بر دامنه کوهی عظیم دامن گسترده بود. قله کوه چنان بلند بود که همیشه سر در عبرها داشت. بالای کوه خدایان همیشه گرم گفتگو به رایزنی بودند. اما از آستانه جنگل تا جایگاه خدایان در زیر فرمان هون بابا بود. درختان سر چون ستونهای کاخی بزرگ نزدیک به هم و با نزم تمام رویده بودند و سر به آسمان می‌سودند. شاخ و برگ درختان سخت در هم تنیده بود و های بلندشان به دگلهای کشتی مانند بود دو ساعت تمام انکیدو و گیلگمش در آستانه جنگل به ستایش آن چشمنداز ایستادند انکیدو میکشید تا بلندی درختان را اندازه بگیرد لاکن از محاسب درمانده بود به خصوص که در شناخت اعداد تجربه ای نداشت تا چند هفته پیش هیچ عددی را نمی شناخت سرانجام ایلگمش چندان نابرد باری کرد کرد دو دست از اندازه گیری برداشت و به گشودن دروازه پرداخت. قفلی در کار نبود تنها یک چفت ساده بر در بود. دو دست در شکاف در کرد و با انگشت چفت در را برداشت و دروازه را به سختی فشار داد. لیکن دروازه که جادو بند بود در برابر آن همه فشار تنها به اندازه باز شد که راهی باریک که پر و خم در میان سر ها آشکار شود. و انگاه دوباره به سختی بسته شد و دست انکیدو لایه درمان انکیدو ناله ای بلند سر داد احساس کرد که دستش وریده شده و دیگر توان پرتاب نیزه و زوبین نخواهد داشت گیلگمش با تمام نیرو به دروازه فشار آورد و تنها توانست دروازه را اندکی ببشاید تا انکیدو دستش را بیرون بیاورد انکیدو که از درد بود نویدانه از دوستش خواست تا به شهر اروک بازگردند ما نمی توانیم پا به درون این جنگل بگذاریم. نگاه کن که هنبابا پیش از آنکه بر ما آشکار شود چه بلایی بر سر من آورده است. پس بیاندیش که هنگام روبرو شدن با ما چه ها خواهد کرد. گیلگمش پاسخ داد ای دوست اینک ای هون بابا با جادوگری بر ما پیشی گرفته و همین که به جادو پناه برده نشان ترس اوست. ما در نبرد تن به تن بر او چیره خواهیم شد. اما بدان که برای بازگشتن دیگر بسیار دیر است. به راستی مردم شهر و اروک چون پادشاهشان به شکست خیش اقرار کند چه خواهند گفت؟ انکیدو و گیلگمش دوازده شبانه روز بیرون دروازه جنگل سر ماندند. رفته رفته از درد انکیدو کاسته شد و زخمش بهبودی یافت و نیروی از دست رفته بازوانش بازگشت روز دوازدهم به سوی دروازه روی آوردند و این بار دروازه بی هیچ کوششی خود به خود باز شد و آن دو به بیشه زیبا و مینویی در آمدن. تمام روز از زیر درختان گذشتند و شب هنگام در گوشه‌ای خفتند و خوابهای شگفت دیدند گیرگمش دید کوهی از این بر سرش فرو ریخت چندان که در زیر توده سنگ خاک گم شد آنگاه مردی بسیار زیبا پدیدار گشت دست او را گرفت و نجاتش داد. با شگفتی از خواب پرید و تعبیر خواب خود را از انکیدو خواست. انکیدو گفت ای دوست خواب تو را باید به فان نیک گرفت. کوهی که برطوریخت هون بابای هیولاست. ما بر او پیروز خواهیم شد و لاشش را به باد خواهیم سپرد تا تعمی کرکس ها و شغال های لاش خور شود. سهرگاه بار دیگر به راه افتادن و تمام روز در زیر درختان سهر راه پیمودند. شب که شد خفتند و این بار انکیدو خواب دید که طوفانی سهنگین برپا شد زمین بلرزه در آمد و رعد و برق. آسمان را فرا گرفت و ابرهای سیاه بر همه جا سایه گستردن آنگاه آزرخشی از آسمان فرود آمد و آتشی دامن گستر در جنگل برپا کرد چیزی نگذشت که آتش فرو نشست اما سراسر زمین در زیر خاکستر پنهان شد هنگامی که گیلگمش داستان خواب انکیده را شنید آن را به فال بد گرفت اما با او سخنی نگفت و برای دل دادن به انکیدو کوشی تا امیدوارانه با او سخن بگوید. با امداد دیگر برای دیدار هنبابا راه جنگل را در پیش گرفتند. نیمه روز به قلب جنگل رسیدند. اکنون هنگام آن بود که نقشه خیش را اجرا کنند گیلگمش با اعتبار سنگین فلزی خود به بریدن درخت سروی پرداخت. درخت شکافی برداشت و با صدای بلند بر زمین افتاد. آنگاه هون بابا نگهبان درختان سرو به شتاب از پناهگاهش بیرون آمد و به دو قهرمان نزدیک شد. اینکی دو در سخن گفتن از آن حیولا گذاف نگفته بود، هون بابا حیولایی بود عظیم از, از گیلگمش نیز بلند قامت‌تر. در میان پیشانی بزرگش یک چشم میدرخشید و با آن چشم می توانست به یک نگاه هر آفریده ای را سنگ کند گیلگمش برای نخستین بار از دیدن چنان حیولایی هراسان شد و بر خود لرزید و در دل از خدای آفتاب یاری خواست خدای آفتاب نیایش را شنید و به او پاسخ داد که بیهراس پیش رود پس بیدرنگ فرمان داد تا طوفان در آسمانها آغاز شود و نباد آتشین زمین را فرا گیرد همچون بادهایی که بیابانها را میروند. و تشنگی می افزاین. آفتاب نیمروز تاریک شد و هنبابا احساس سرد که نابینا شده است و نگاهش نیروی کشنده خود را از دست داده است طوفان پرخروش به چهره پشت و پهلوی همبابا تازیانه زدن آن گونه که هیولا پیش پیشرفتن داشت و نه نیروی بازگشتن دیوانوار تلاش می کرد تا بادها را به هر سو تاراند همانند کسی که گرفتار حمله زنبوران شود لیکن تلاش تلاشهای او یکسره بیهوده بود طوفانها باز نماندند و سرانجام هون بابا در برابر گیلگمش که بر کنده درختی شکسته به تازار نشسته بود به زانو درآمد بابا که از شدت باد توان خود را از دست داده بود و جایی را نمیدید نمیدانست هایش را در کدام جهت فرود آورد از گیلگمش درخواست بخشایش کرد اما قهرمان شمشیر بزرگ خیش را از نیام کشید و با یک ضربه سخت سر حیولا را از تن جدا کرد و جنگ به پایان رسید. گیلگمش بسیار شادمان بود ولی به جای آواز خواندن و پای کوبیدن که در خور قهرمانان کوچکتر است با آرامی خونسردی سلاح خیش را با سبزه ها پاک کرد و پیراهن بلندش را که از خون هم با بارنگین شده بود از تن در آورد. و پیراهنی دیگر پوشید و به راستی که با وقاری در خود خدایان رفتار کرد خدایان از بلندی های کوه لبخند زنان او را مینگریستند زیرا که ای از وجود گیلگمش از آن خدایان بود و پیروزی او پیروزی آنان در این میان بیش از همه اشتار الحه عشق و همسری گیلگمش را ستایش میکرد اشتار بیدرنگ از آسمان ها فرود آمد و در برابر گیلگمش پدیدار شد و گفت ای گیل گمش. من میخواهم که تو همسرم باشی زیرا که هم را نابود کردی تو زورمند و زیبایی همسر من باش چرا که در کنار من به آسمان ها پرواز می کنی و بر گردونه ای زرین و جواهر نشان سوار می شوی و هنگامی که به کاخ خدایان راهیابی بوی کندر و صندل تزا را آکنده می سازد و زمین از قالی های زخیم پرپشم و نر چون پوست خرس زمستانی پوشانده می شود، قهرمانان و خدایان تو را سجده می کنند و به تخت زرین پادشاهی رهنمونت می شود. مردمان قربانی های فراوان پیش پایتون تو می کنند، از آنچه تا کنون بودهی سروتمندتر و نیرومندتر می شوی و آنگاه اعتراف می کنی که تمامی فر و شکوه اروک در برابر کاخ خدایان هیچ است. کالسگهتر را اسبان خدایان که بسی چابکتر از اسبهای آدمیانند به پیش میبرند و بدین گونه تو میتوانی با تیر و کمان غزالهای بسیار شکار کنی گیلگمش جواب داد ای الهه گویا فراموش کرده ای به من بگویی که هرگاه همسر تو شوم چه چیز باید به پیشگاهت نثار کنم به راستی پسندیده است که تو همسری برگزینی و این همه هدیه به او پیشکش کنی بی که او نیز تلاشی کند و چیزی فراهم آورد زنان گذشته از گوهرهای ناب گردن، بندهای مروارید و سنگهای گرانبها روغنهای خوشبو اطر جامه شیرینی گوشت شکار میوه های کمیاب و شراب به سرزمین های دوردست را نیز دوست میدارند و هرگاه پیشکش این گونه ها به آدمیان به آین باشد و راستی به یک الاهه چه میتوان پیشکش کرد؟ من میدانم که در آغاز همه چیز به آرامی خوشی میگذارد لاکن روزی تو از من چیزی کمقدر طلب میکنی همچون مرباریدی کوچک برای انگشتری و کم کم خواسته هایت میگیرد و من باید تمام جهان را برای برآوردن آرزوهای تو زیر و رو کنم و این گمان برای من دوزخی است. از اینها گذشته تو با شوهران پیشین خود براستی چه کردی مگر با تموز ازدواج نکردی و او در اندوح و سختی تن به مرگ نداد و دیگران باقمان پدرت که هر بام داد با دستهای خود از باقی آنو میوه میچید و در سبدهای زیبا برایت می آورد تو او همراها کردی و بالاتر از آن بسیار عذابش دادی و سرانجام به کبوتی بدلش کردی و هنوز که هنوز است او همچون پروانه‌ای در زیر درختان باخو با زندگی میکند نه اشدار پیشنهاد تو به هیچ روی برای من پذیرفتنی نیست با شنیدن سخنان تلخ گیلگمش خشم عظیم بر الهه عشق چیره شد به قصر خدایان شتاف و به نزد آنو رفت تا از گیلگمش شکایت کند پدر گیلگمش توهینی بس ناروا به من روا داشته است. من سخت شرمندم و تو باید داده من را از او بستانی. آنها دختر خیش را خوب می و میدانست چه بدخوست و از ازدواج ازدواجهای بیشمار او که همیشه مایه رنج چوهرانش بود دلی آزرده داشت و از این رو چندان در بند سخنان دختر نبود. اما خونش دار از خش می جوشید و از اندیشه کین خواهی در نمی گذشت. به پدر گفت گاو جادوی را باز آفرین و به نورد با گیلگمش وادار اگر خواست مرا بر نیاوری من به جرفای زمین فرو می روم و دروازه ها را می گشایم آنگاه همه مردگان به روی زمین باز می و در همه جا پراکنده می شوند آشوبی بزرگ به پا خواهد شد و مردمان دیگر روی آسایش نخواهند دید آنو میدانست که الهه آفتاب تمام آن دارد که به این کین ها رفتار کند پس کوشی تا او را بر سال آورد تو از من میخواهی که گاب جادویی را باز و به جنگ گیلگمش بفرستم دیچ فراموش مکن که هر بار این گاب بر زمین فرود آمده هفت سال آزگار خوشسای روی داده است. تو خود نیک می دانی که هنگام دن آوردن آتش از دماغ گاو فواره میزند و زمین را یکسره می سوزاند. اشتار پاسخ داد، تو هیچ بیمناک مباش، من آن همه را جبران خواهم کرد، سبززاران را یاری خواهم داد تا زود برویند و برآیند و هر زمان که گاو جادویی کشتزاری را به در دم آن کشتزار را سبز خواهم کرد، هیچ کس جز گیلگمش بد سرشت آسیب نخواهد دید اونو دیگر چیزی نگفت. گاو را باز آفرید و به جنگ انکیدو و گیلگمش فرستاد که آرام و شاد از نبرد پیروزمندانه خیش با هونبابا باز میگشتند. پس از نبردی که ناساهمگیم گاو جادویی دشمنی ناچیز مینمود. نمود. گاو جادویی را به کشتن گیلگمش فرمان داده بود. نکشتن کشتن امکیدو و آن جانور تنها گیلگمش را پیش چشم داشت و با خشم به سوی او میتاخت. از دماغ و دهانش آتشی سوزان بیرون می‌زد. آنچه بر سر راه گاو جادی بود از درختان کهنسال تا خانه های بزرگ با ضربه های سخمگین دم او با خاک یکسان می شد. سمهایش گیاهان را میپژمرد و همه چیز می‌خشکید و سیاه می شود. چون باد پیش می‌تاخت و در پشت سر سیاهی و ویرانی چیزی به جای اما انکیدو دو که سخت نگران و نگاهبان گیلگمش بود با نزدیک شدن گاو جادی خود را کنار کشید. گاو از نگاه انکیدو گذشت او را ندید انکیدو با یک جهش شمشیرش را در میان دو کتف گاو فرود آورد جانور به سختی از پای درآمد و در دم جان سپرد انکیدو و گیلگمش دیگر کاری نداشتند جز آن که تن گاو را بدارند و قلبش را بیرون آورند تا نثار نگهبان خیش خدای آفتاب کنند و چنین نیز کردند نورد با گاو جادویی در دشتی روی داد که از شهر اروک چندان دور نبود اشتار در کنار همراهانش بر بلندترین باروی شهر به تماشای نبرد ایستاده بود و چون مرگ گاو جادویی را دید فریادی از خشم برآورد و گیلگمش را نفرین کرد و دشنام داد انکیدو دشنام خدای آفتاب را شنید و خشم بر او چیره شد دم گاو را برید و به سوی آنو پرتاب کرد و گفت ای بدنهاد اگر مرا به تو دسترس بود بر تو همان میرفت که بر این گاو رفت تا آن زمان که بر تو دست یاوم این دوم گاو را بگیر و از آن گردن بندی در خور خیش بساز. اشدار سرفکنده و شرمسار از آنجا دور شد و دو دوست با دریده گاو جادویی پیروزمندانه به شهر اروک بازگشتند. مردم شهر از دیدن آن جانور شگفتی ها کردند و با آفرین و ستایش بسیار پادشه خیش را پذیرا شدند. گیلگمش و انکیدو بیگمان بر پیروزی بزرگ درس یافته بودند. لیکن با این پیروزی خدایان را خارش مرده بودند و خدایان هرگز این را نمی بخشاین انکیدو و گیلگمش پیروزی های بزرگ خیش را جشن شکوهمند برپا داشتند شاخهای گاو جادویی را به پیشگاه لوگالباندا خدای جنگ هدیه کرد تا بر دیوار معبد بیاویزند و در آنها روغنهای خوشبو بسوزانند. و این دو شاخ چندان بزرگ بودند که گنجایش هر کدام بیش از چش پیمان روغن اطراگیم بود آنگاه گیلگمش کاهنان و بزرگان و پیشوران را به بزنی بزرگ و فراموش خواند خاند که تا پاسی از شب ادامه داشت هنگامی که همه مهمانان بزم را ترک گفتند و دو قهرمان در شبستان کاخ خفتند انکیدو در خواب دید که خدایان بزرگ آسمان به گفتگو و رایزنی گرده هم آمدن تا دانسته شود که از آن دو تن انکیدو و گیلگمش کدام یک کشنده هنباباست و کدام یک کشنده گاو جادویی آنو خدای خدایان بران بود که چون انکیدو و گیلگمش با هم در کشدار همبابا و گاو جادویی دست داشتند هر دو سزاوار مرگند اما دیگر خدایان با او هم داستان نبودند برخی میگفتند گیلگمش گناهکار است و سزاوار مرد و برخی میگفتند گناه از انکیدوس که گیلگمش را به جنگل صعر رهنمون شده در آسمان ها هیاهی درگرفته در گرفته بود خدایان فریاد زنان گرمه به گومگو بودند همچون زنان در بازار هنگام چانه زدن با کم فروشان جوش و خروش خدایان زن در این گفتگوها از خدایان مرد کمتر نبود حیاهو بالا گرفته بود فریادها هر دن بلندتر میشد و گوش خراشتر، چندان که انکیدو گیج و مات بیدار شد پیش از آن که از فرجام گفتگوی خدایان آگاه شود لیک میدانست می دانست که سرانجام او را گناهکار خواهند شناخت ایلگمش از تبار خدایان بود و بیگمان خدایان با او بر سر مهر بودن. انکیدو دو دلتنگ شد و سرشار ترخ کامی و کین. آن دختر جوان نفرین ها فرستاد که او را از زندگی آزاد و شادمانش در بیشه و دشتها دور کرده بود. زندگی بی آلایش ساده را از او باز ستانده بود. اکنون آن که خود بخواهد، داشت انکیدو را به نابودی میکشند اما بامدادان چون آفتاب برآمد همراه با پرت بامدادی آرامش خویش را باز یافت. خدای آفتاب همراه با پرتو بامدادی خیش خویش با انکیدو سخن میگفت. ای اینکیدو چرا بزنی نفرین میفرستی که تو به میان آدمیان آورد؟ به مگر آن زن نبود که تو را به بهرهوری از خوردنی های گوارا جامه های زیبا و شراب های شاهانه آموفت؟ او را سپاسگزار باش که تو با گیلگمش آشنا کرد تا از شادیها و های دوستی برخوردار شوی. در خفتن بر بستر برگها و سبزههای پشمورده‌ی جلگهها، آسایش بخشتر از رویاندازهای ارغوانی و بسترهای نرمی که گیلگمش برایت فراهم آورده است. زمانی که بروک آمدی رهگذران با شگفتی و کنجکاوی برمیگشتند و بر تو خیره می‌شدند تا ریشخندت کنند. ولی اکنون کنگامی که, که از خیابانهای شهر گذر می‌کنی، همه مردم تو را گرامی میدارند و حرمت میگذارند چرا که یار نزدیک شاه شکارچی بزرگ و آن دلاور پیروزمندی که شکست دهنده گاو جادویی است و شبانگاه هنگامی که حیاهوی شهر اروک فرو می‌نشیند، گیلگمش از فراز کنگره کاخ رازهای ستارگان را به تو اینکی انکیدو چون این سخنان را شنید که خدای آفتاب همراه با نخستین پرتو بامدادی خیش زمزمه کرد دلش سرشار سپاز از آن زن جوان شد که او را به میان آدمیان آورده بود چند شب بعد انکیدو خواب دیگری دید این بار بر او پدیدار شد با اندام شیر بالدار و با چنگال شاهین و بر روی انکیدو پرید و او را چون پرنده شکاری در چنگال گرفت و به آسمان ها انکیدو که دید به جای دستهایش دو بال رویده است سخت حراسان شد و چون حس کرد که پرهایی نیز بر پوست تنش می روید، حراسش دو چندان گشت. مرغ کوه پیکر بر شتاب خود افسود او را به قاری جرف برد که در پس ابری از قبار نیم روشن مینمود. در آنجا گروهی دید، انبوه از شاهان، کاهنان، شهزادگان و توانگران قدرتمند که جامعه های فاخرشان کهنه بود و فرسوده، و در جستپوی همه پرهای خاکسری رنگ رویده بود آنها دیوهایی بودند که زمین را در جستجوی قزاهای دل‌آشوباور چنگ می‌زدند امکدو آنگاه دید که خود نیز هم شکل و همانند آنان است و دانست که مرگ نزدیک است چون بیدار شد چندان اشک از دیده فرو بارید و چنان بلند نالید که گیلگمش که در کنار او خفته بود ناگهان از خواب بیدار شد هنگامی که پادشاه داستان خواب انکیدو را شنید دانست که به پایان زندگی او چیزی نمانده است نه روز تمام گیلگمش بر بالین دوستش بر ایوان کاخ نشست و کسوگواری کرد انکیدو روز به روز رنجورتر میشد روز نهم پرا رسید و انکیدو دیگر یارای احساس کردن و دیدن نداشت و آنگاه ترک جهان را گفت و درگذشت گیلگمش با قلبی شکسته در غم یار از دست رفته مویه کنان میگفت تو هنچون تبری بودی بر کمربند من و خنجری آویخته بر پهلویم تو سپر من بودی و ردای فرمان روایی من تو نیروی من بودی و یاور من ما در کنار هم از دشتها و از میان بیشها گذشتیم ما بیاری هم حیولای جنگل سب و گاو جادویی را لابود کردیم و رهینک تو در خوابی چنان در خوابی که دیگر بیدار نخواهی شد و دل تو هرگز نخواهد تپید گیلگمش با اندوهی چنین بزرگ نومیدانه گریست و جامه بر تن درید، کمر گشود و موی سر آشفته کرد، تمام شب در کنار کالبد بیجان انکیدو که چهره را با پارچه‌ای پوشانده بود بیدار نشست و با آمدادان چون روپوش از چهره دوستش برگرفت او را نشناخت. چرا که مرگ چهره انکیدو را دگرگون کرده بود. آنگاه گیلگمش در درون خویش شوربختی عمیق احساس کرد و این بار برای خود بود که میگریست و می میگفت من چهره مرگ را دیدم و چه حراسانم من نیز روزگاری خواهم مرد یک روز به خوابی فرو می میرومم که از آن پس آن بیداری نیست و آرام آرام اندیشه در سرش گذشت شنیده بود که در امتهای زمین در جزیره دور از آدمیان مردی پس کان سال زندگی میکند تنها مردی از مردمان که از چنگ مرگ گریخته است گیلگمش بر آن شد کتاب جستجوی مرد پیر که امنا پیشتی نام داشت به پردازد و راز بیمرگی او را بپرسد پس بیدرنگ و بدون گفتگو با کسی به راه افتاد. گیلگمش زمانی دراز سفر کرد و به جاهای بسیار دور رفت. این بار این با او هم سفر نبود و راه بر گیلگمش بسید درازتر می نمود. باری سرانجام به پای کوهی رسید که دو قله داشت. نام این کوه ماشو بود. بود. جانورانی بر فراز آن به تماشای ایستاده بودند، این جانوران آدمیانی بودند به شکل کشدم هایی درشتندام که بر دروازه آفتاب نگهبانی می کردن. هر روز هنگامی که آفتاب دیار خدایان را ترک می تا به مردمان روشنایی بخشد همین نگهبانان بودند که درهای بزرگ آهمین دروازه آفتاب را باز می کردند و شبانگاه باز هم آنها بودند که بازگشت آفتاب را پذیرا می شدند. تنها نگاه کردن بر این موجودات بس هرازنگیز مرگاور بود اما گیلگمش دلیری کرد و به جانوران کجدوم شکل نگریست و آنها به خود گفتند او نباید آدمی زاد باشد چرا که اگر از آدمیان بود یارای نگریستن در ما را نداشت و آنگاه از او پرسیدند که سبب آمدنش چیست؟ گیلگمش گفت ای بوز من اینک در برابر شما و دروازه آفتاب استادم زیرا میخواهم که با امن پیشتی دیدار کنم و از اسرار ازلی آگاه شوم. می خواهم تا اون را راز بیمرگی را به من بیاموزد نگهبانان پاسخش دادند ای گیلگمش تا کنون هیچ کس را این سفر نبوده است پشت این در دهلیز تاریک و درازی است که به کوه بلند راه میبرد. دهلیزی است آنچنان دراز که اگر دو بار هر بار دوازده ساعت راه بروی به انتهای آن نخواهی رسید آدمی نمیتواند بر خاک آن پای بگذارد زیرا سرزمین آفتاب است گیلگمش گفت ای بزرگان اگر این دهلیز درازتر و حراساورتر از آنکه میگویید باشد باز هم من میخواهم از آن بگذرم تا با امناپیشتی پیر دیردار کنم. من در کنار دوستم انکیدو به پیشتاز خطرهایی بس بزرگتر از این رفتم و اینک انکیدو مرده است و من تنها ماندم و سر آن دارم تا راز جاودانگی را بیابم چرا که از مرگ بیزارم. آدمیان کژدمشکل دریافتند که کسی که در برابر آنان ایستاده از آدمیان ساده برتر است و دانستند که خدایان او را نگهبانی میکنند پس درهای بزرگ آهنین را گشودند و راه دادند تا گیلگمش با دلیلی بسیار به آن دهلیز تاریک درآید گیلگمش دوباره به بار دوازده ساعت راه سپرد و تاریکی عمیق گرداگردش تیره تر شد و گرد سوزانی گلویش را فشرد چندین بار نزدیک بود به سوی روشنایی که هنوز در پشت سرمیدید بازگردد. بازگردد. هزاران بار احساس کرد که کوه او را در خود می فشرد و دیوارها به یکدیگر نزدیک می شوند تا برای همیشه در زیر سنگ ها زندانی شود ولی بیش از نیمی از خون گیلگمش خون خدایان بود و دلاوری او بیش از دلآورترین آدمیان. به راه خود ادامه داد و نزدیک به ده ساعت بعد نسیم تازه شمال را بر گونه های خود احساس کرد و این به گیلگمش دل داد. سرانجام اندکی روشنایی پدیدار شد. این پایان سفر گیلگمش در دل کوه بود. دیری نگذشت که به آخر دهلیز رسید و در برابر خود باقی دید بس زیبا. ریههایش که از گرد سوزان دهلیز پر بود، از نسیم خونکی که به آرامی بر ها و گلها میوزید و از میان درختان و ها میگذشت، تازه و شاداب شد. بر شاخه های درختان باغ میوه از گوهرهای گرانبها آمیخته بود. درخت آلبالو یا غوتبار آورده بود و درخت آلو عقیق و دانه های شبنم برگ ها دانه های مروارید بود، هوا از عطر های خوشبو سرشار بود و زلال‌ترین آب‌ها در جویبارها زمزمه‌گد جاری. گیلگمش از دیدن آن همه شگفتی حیران مانده بود که ندایی از آسمان برخاست. ای گیلگمش، خوب به سخنان من گوش دار. این باغ از آن من است. باغ خدای آفتاب و بسی زیباتر است از هر آنچه در تصور آوری. دیگر فراتر از این مرا، من تو را رخصت می دهم تا هر زمان که بخواهی در اینجا زندگی کنی پیش از این هرگز پای آدمی زادی به این باغ نرسیده بود و جز خدایان که گاهی به اینجا می آیند تا بیاسایند تو تنها کسی هستی که از این باغ دیدار می کنی و از آنجا که انسانی فناپذیری آرزوی بیشتر و برتر از این تو را نشاید زندگی جاودانه که در جستجوی آنی برای تو میسر نیست پس همینجا بمان و شاد باش اما این گیلگمش کسی نبود که با این دلخوشیها از نیمه راه بازگردد. او که از همسری با خدای عشق اشتار سر باز زده بود برای چند گل و درخت هرگز از اندیشه که در سردار چشم نمی پوشید. پس خدایان آفتاب را سپاس بسیار به جا آورد. از باغ گذشت و به راه خود ادامه داد. تر آن سوی باغ ریگزاری بزرگ بود و به راستی که میان سوزندگی این شنزار با گوارایی آبهای خونک و تری و تازگی سایه های درختان آن باغ چه تفاوت عظیمی بود. گیلگمش نه راسید و پیش رفت. پاهایش از درد راه راهپیمایی تا به سنگینی بدنش را نداشت سرانجام هنگامی که احساس کرد دیگر توان پیشرفتن ندارد و بهتر آن است که بر شنها و چشم به راه مرگ شود در دوردست افق خانهی تک افتاده دید چشمانداز آن خانه نیروی تازهی به او بخشید دیری نگذشت که خود را در برابر مهمان مهمانسرای کوچک یافت اما این هنوز پایان رنجهای او نبود مهماندار که در را گشود چون گیلگمش را تنها و پای پیاده یافت گمان برد که مردی است دوره گرد. پس در را به روی او فرو بست گیلگمش با مشت به در کوفت و کوشی تا به زور در را بگشاید و چنان نعره کشید و چندان تهدید کرد که مهماندار سر از پنجره بیرون آورد تا با او سخن بگوید تو کیستی که به در خانه من چنین حیاهو برانداخته‌ای نامت چیست چه میخواهی؟ ای مهماندار من پادشاهی بزرگ نی‌رومندم و بر شهر اروک فرمان میرانم، نام من گیلگمش است. من نه چون یک دشمن، بل همچون دوستی آمدم و از تو تمنای یاری دارم. سرایدار به دقت در گیلگمش نگریست و دانست که از راهی دور آمده است و دروغ نمیگوید. پس رزادا تا در بک شاید و به او اجازه دهد که در اتاق بزرگ خونک مهمانسرها دمی بیاساید. این سرای کوچک چه دلانگیز بود؟ خدمتگذاران آرام به درون آمدند و آب یخ آوردند و گیلگمش با تشنگی بسیار نوشید آنگاه در برابر او میوه و گوشت نهادند تا نیروی از دست رفتهاش را باز یابد و زمانی که به قدر کفایت استراحت کرد به نزد او آمد و بار دیگر گفت ای گیلگمشک همینقدر میتوانم گفت که از راهی بس دور آمده ای من شهر اروک را نمی شناسم لاکن نام تو برای من ناشناخته نیست این تو نبودی که هومبابا هیولای بزرگ و گاو جادویی را کشتی گیلگمش چون شنید که آوازه نامش تا به این سرزمین دوردست نیست رسیده است اشک از دیده فروریخت زیرا به یاد یار همراهی افتاد که با یاری او این نام را به کف آورده بود یاد انکیدو غمگینش کرد پاسخ داد آری من بودم که هیولای بزرگ هومبابا و گاو جادویی را نابود کردم اما در آن زمان انکیدو با من بود او اکنون دیگر زنده نیست بهترین دوست من بود من در کاخم از او پرستاری کردم و چشم خیش دیدم که چگونه زندگی از او برید و دیدم که چگونه چهرش دگرگون شد و سرانجام ترس مرگ مرا فرا گرفت از آن پس در جستجوی راز جاودانگی آواره جهان شدم سرایدار به او گفت گیلگمش هیچ آفریدهی فناپذیری را یارای دست یافتن بر این راز نیست زمانی که خدایان آدمیان را آفریدند و زمین را به آنان بخشیدند مگر نیز به آنان دادند این سرنوشت انسان است مرگ جانبههایی است که انسان سرانجام باجد در برابر زندگی شادمانه خیش خویش بپردازد زندگی کن شاد باش و چنین پندار که هر روز و هر ساعت از زندگی تو خود جشنیست به های درختان بنگر آنها را بچین و در دستهای خود بفشار و آبشان را بنوش لباسخای فاخر پرنخشونگار چشم نواز به تن کن. در آبهای پاک و تازه شنا کن. از دیدن فرزندانت که داروبرت میدوند لذت ببر و به آنها بیاموز که چگونه کمان به دست گیرند و شکار را هدف تیر قرار دهند. فرزندان تو جاودانگی تو اند ای گیلگمش ایرانیز بیاموز که چون زمان تو به سرسی تمام خوشبختی‌هایت را باید بدرود گویی اما گیلگمش با این سخنان نیز رام نشد و سرسختانه پای فشرد تا بداند جایگاه امناپیشتی کجاست. سرانجام سرایدار به او گفت امناپیشتی پیر در جزیره زندگی می کند دور از دسترس زیرا دریاهای بزرگ و گذرناپذیر گرداگرد جزیره گرفته است. لاکن من به تو وسیله رفتن به آنجا را خواهم داد. از بخت نیک تو یکی از قایقرانان امناپیشتی اینجاست، و اگر بخواهد میتواند تو را به جزیره برساند گیلیمش بیدرنگ برخاست تا قایقران را بیابد زمانی نگذشت که او را در جنگلی سرگرم علف چینی یافت هنگامی که گیلیمش نیاز خیش را با او در میان نهاد قایقران پذیرفت اما گفت آمدن تو یک شرط دارد پیش از حرکت باید از درختان این جنگل 120 و بزرگ بسازی زیرا آبهای دریاهایی که باید از آنها بگذریم کشنده است و حتی یک قطر آب هم نباید بر دستهای تو بپاشد. هرگاه پارویی تر شد باید آن را به دور بیاندازی و پاروی دیگری به دست گیری. گیلگمش آنچی را که قایق گفته بود انجام داد. در اندک زمانی 120 پارو فراهم ساخت و آن دو سفر خیش را آغاز کردند. یک ماهونیم قایق راندند تا به آبهای مردگان رسیدند. گیلگمش همان کرد که قایقران گفته بود لاکن هنگامی که تمام 120 پارو را به کار برد هنوز از آبهای زهرناک نگذشته بودند و گیلگمش وامانده بود سرانجام پیراهن خود را همچون بادوانی بر دکل قایق افراشت و بدین گونه به جزیره عمنهپیشتی نزدیک شدند امنهپیشتی کنار جزیره ایستاده بود و چشم به راه قایقران افق را تماشا میکرد چون قایق را دید فریاد برآورد این بادمان من برای چیست؟ قایق من در کشاکش است و من در آن دو چست می بینم اما نه آن دیگری انسان نیست در او نشانه ای از خدایان است. و با کنجکاوی قدم در آبهای کنار نهاد گیلگمش به آن نپشتی درود فرستاد و بیدرنگ قصد خیشا را از آن چنان دیداری بیان داشت مرد بیمرگ به او پاسخ داد ای جوان مرد تو هرگز به چیزی که در جستجوی آنی نمی رسی. مرگ شرطی است که خدایان در برابر آن زندگی می‌بخشند پرندگان زاده می‌شوند زندگی می‌کنند و می‌میرند نفرت در آدمیان شعله می‌کشد و جان می‌گیرد و باز خاموشی می‌پژرد و جان می‌بازد های درختان به هنگام بهاران جوانه می‌زنند و در پاییز پژمرده می‌شوند و فرو می‌ریزند این زندگی که به تو پیشکش شده و تو می‌خواهی همیشه نگاهش داری از آن تو نیست باید به دیگرانش واگذاری تا آنها نیز به سحم خود پرتو آفتاب را بشناسند و از هوای جانبخش جنگل بهرمند شوند. گیلگمش گفت این درست اما از یاد ما برکه تو خود نیز از مرگ گریخته ای. میان من و تو چندان تفاوت امتیازی نیست. تو را مینگرم و میبینم که هر چه در توست در منم هست. تو قلبی داری برای تحمل جنگ، چشمهایی برای دیدن، دستها و بازوانی برای گرفتن آنچه میخواهی پس با من از رازی که یافته‌ای و کالبودت را جاودانگی بخشیده است، سخن بگو. ای گیلگمش، گوش به من بسپار و بشنو که چگونه جاودانگی یافتم. در ابتدا وقتی که من هنوز جوان بودم، خدایان بران شدند تا طوفانی بزرگ برپا کنند که نژاد بشر را از میان بردارند. از آسمان باران بارید و آفتاب خاموش شد. تمام آدمیان مردند مگر من. یا خدای بزرگ در امانم داشت و از نابودی رهاییم داد. بیاری او بود که دانستم باد سهمناکی که گرد کلبم فریاد میکشد شوربختی بزرگ در پی خواهد داشت و دانش او بود که به من راه رهایی آموخت. به فرمان او کشتی بزرگی ساختم که قیراندود بود و همراه همسرم و همه جانوران کشتزار خیش بر آن کشتی سوار شدم شش روز و هفت شب آب دریاها بالا آمد و بر شدت طوفان افسوده شد و گردبادی سهمگین همه چیز را نابود کرد ولی چون دوباره آفتاب پدیدار شد کشتی ما همچنان بر آب شناور ماند سپس آبها فرو نشستند و کشتی بر قله کوهی بلند آرام گرفت چون خواستیم از آن خارج شویم خدای بادها فرا رسید و ما را از آنجا راند و در مرز افق به این جزیره رحنمون شد. آنگاه خدایان به من رو دادم که با همسرم و قایقرانی اینجا زندگی کنم و تنها شاهد زمان پیش از طوفان باشم. طوفانی که همه چیز را از میان برد. اینک تو ای گیلگمش آگاه شدی که چرا تنها من از میان تمامی آدمیان زندگی جاودانه دارم؟ پس، گیلگمش دریافت که مرد پیر از رازهای جاودانگی آگاه نیست و توان آن ندارد که از این راز دری به روی وی بگشاید زیرا این تنها خاست خدایان بود که زندگی جاودانه به مرد پیر هدیه شود بیان که نشان داده باشد که شایستن آن است. با این همه هنوز هم گیلگمش نمیخواست به نامیدی تسلیم شود پیرمرد از مراسخ را در چشمان گیلگمش دید و بر آن شد تا او را بیازماید تا در اراده شکستی پدید دارد. شاید خدایان آنچه را که به من بخشیدند نیز هدیه کنند. نه آن است که تو کارهایی بیرون از توان بشن انجام داده‌ای، نه آن است که در میان آدمیان تو تنها انسانی که پا به این جزیره گذر ناپذیر نهاده است، بسیار خوب. بار دیگر نشان بده که شایسته زندگی جاودانه داری. اینجا بمان و شش روز و شش شب به درگاه خدایان نیایش کن تا تو را از مرگ برهانند اما فراموش مکن که در تمام این مدت نباید چشم هم بگذاری خواب برادر مرگ است و اگر تو نتوانی بر خواب چیره شوی مرگ را چگونه شخص خواهی داد شبانگاه گیلگمش دست به نیایش برداشت تنها ساعتی در برابر وسوسه خواب شبانگاهی تا آورد زمانی دراز تلاش کرد بود از میان ها و های دور گذشته بود و به هنگام گذاشتن از دریای مردگان از پارو زدن سخت خسته شده بود پس چشمهایش بسته شد و به خوابی سنگین فرو رفت نیمه شب پیرمرد به دیدن گیلگمش رفته چون او را در خواب دید لبخندی زد آنگاه همسرش را فراخواند و به او گفت ببین که گیلگمش قهرمان چگونه از خستگی بسیار به خواب رفته است اما چون سر از خواب بردارد مانند همه مردمان نخواهد پذیرفت که در خواب بوده است. اکنون میخواهم که تو مرا یاری کنی و گواهی دهی که من او را بر کناری دریا خفته یافتم. پس برو و هر روز گرده نان پراهم کن من از زیک او نان هر روز خشک میشود و آنگاه کپک میزود و چون گیلگمش بیدار شود از تعداد گرده های نان درازای خواب خود را در خواهد یافت. و چنین شد؟ گیلگمش هفت روز هفت شب در خواب بود آنگاه پیرمرد او را بیدار کرد و گفت گیلگمش برخیز مدت درازی است که خوفتهای گیلگمش گفت من خوابیده بودم تو اشتباه میکنی عمناپیشتی من تنها لحظه دیده فرو بستم و تو میگویی خفتهام اما امناپیشتی ان هفت گرده نان را به او نشان داد گردهٔ نخستین از کپک سفید شده بود و خشک خشک بود گرده نانهای دیگر نیز چندان تازه نبود تنها آخرین نان که زن صبح آن روز در کنار گیلگمش گذاشته بود خوردنی بود گیلگمش دریافت که هفت روز و هفت شب در خواب بوده است و دانست که پیرمرد خواسته است به او چه بیاموزد دیگر جز این راهی نداشت که به شهر اروک بازگردد و باقی عمرا تا میتواند به خوشی و شادکامی بگذراند پیش از بازگشت پیرمد از گیلگمش خواست که در چشمهای تن بشوید که آب آن آدمی را نیرومند و زیبا کرد و آنگاه پیراهنی به او بخشید که هرگز پاره یا کهنه نمیشد و گیاهی پیشکش او کرد که جوانیش را باز میگرداند در راه بازگشت گیلگمش که میخواست از چشمهای آب بنوشد تا تشنگی فرو نشاند گیاه جوانی را کناری نهاد و ماری آن گیاه را دزدید و از این روز که از آن زمان تا کنون مارها با پوست انداختن جوانی خود را باز میابند. گیلگمش دست خالی به اروش بازگشت و از آن پس با مهر و مردم دوستی خرطمندانه تر از پیش بر سرزمین خیش فرمان روایی کرد. زیرا که ستمگری و خشونتش انگیزه پرید آمدن انکیدو بود که سرانجام یار پایدار او شد. گیلگمش را فرزندانی بود که به هنگام گرفتاری و دشواری آرامبخش پدر بودند وای بساک آنان هر چندگاه خود مایه آن گرفتاری های نیز بودند. هر زمان که حس مرگ گیلگمش را هراسان می کرد به آن خواب خوش می اندیشید که در جزیره امنافشتی دیده بود و به فرجام چون مرگش در رسید و به جهان سایه ها سفر کرد خود به راستی آرزومند آرامش جاودانه بود و پذیرنده شادمانه مرگ